یادهم مهارت یافتن در برتری خفیف هر کسی برای پیروز شدن باید واجد یک خصوصیت باشد و آن خصوصیت قطعیت هدف و مشخص بودن آن است یعنی آگاهی از آنچه می خواهد و اشتیاقی سوزان برای دستیابی به آن ناپل اونهیل بیاندیشید و ثروتمند شوید هنگامی که هنوز به یک سالگی نرسیده بودید، برای کشف دنیای اطرافتان چهار دست و پا این طرف و آن طرف می رفتید. همه اطرافیانتان راه میرفتند. یک روز به مغز کوچکتان خطور کرد که شاید شما هم بتوانید راه بروید. وقتی که این فکر در ذهنتان پدیدار شد، هیچ تردیدی درباره آن وجود نداشت. بایستی آن را امتحان می کردید. این نقطه عطف دوره بعدی زندگیتان بود. حتما امتحانش می کردید، ممکن بود بارها شکست بخورید ولی آنقدر به تلاشتان ادامه میدادید تا در آن مهارت پیدا کنید. بنابراین به معنای واقعی کلمه قدم به قدم آغاز به تلاش برای توصیع مهارتهایی کردید که برای راه رفتن به آنها نیاز داشتید. ابتدا این موضوع را به دیگران اعلام کردید، البته نه با کلمات. کلمات چیزهای متفاوتی بودند. جهانی که هنوز حتی به آن فکر نکرده بودید. مانند بیبروس که قبل از ضربه زدن با چوب بیسبال به خارج از زمین اشاره می کرد و زیر لب چیزی می گفت، شما نیز از خودتان صدا درآوردید و هنهن کردید. شما با تنها راهی که می شناختید به دیگران اعلام کردید که آماده باشید. من الان راه می روم. سپس به چیزی که بالاتر از خودتان قرار داشت چنگ زدید و خودتان را بالا کشیدید. در حالی که یک میز یا صندلی را گرفته بودید، توانستید بیستید. لرزان و متزلزل بودید. بعد از روی عمد یا تصادفی آن را رها کردید که البته خیلی هم مهم نبود زیرا در هر صورت نتیجهش یکسان بود. افتادن و زمین خوردن. سپس همان لحظه یا مدتی بعد دوباره تلاش کردید و سپس باز هم تلاش کردید و تلاش کردید تا اینکه سرانجام بدون کمک چیزی روی پایتان ایستادید مامان ببین جایی را نگرفتم سپس یک قدم برداشتید و در آن قدم گمان کردید که مهارت پیدا کرده اید بله مهارت یافتن در همان لحظه همان نه اینطور نبود شما هنوز راه رفتن را یاد نگرفته بودید و احتمالاً لحظه‌ای بعد باز هم همانجا به پشت می‌افتادید اما اصلاً اهمیتی نداشت زیرا شما آن قدم بزرگ را برداشته بودید و در مسیر درست قرار گرفته بودید گام‌های کودکانه مهارت یافتن و استادی مکانی رفیع و بلند مرتبه نیست که فقط تعدادی نخبه در آنجا ساکن باشند پیگیری هر گونه هدف یا رؤیا، شخصی، شغلی، معنوی و غیره، یک سفر برتری خفیف از رشد، یادگیری و بهبود پیوسته است. مهارت یافتن و استادی یک مقام بلند مرتبه نیست که در انتهای مسیر قرار داشته باشد، بلکه یک حالت ذهنی است که در همان آغاز مسیر وجود دارد. مهارت یافتن و استادی همان عمل پاگذاشتن در مسیر است، نرسیدن به پایان مسیر. برای ورود به عرصه مهارت یافتن و استادی نیازی نیست که با توانایی‌های استثنایی متولد شده باشید. همچنین این عرصه برای افراد فوقالعاده با استعداد نگه داشته نشده است. حتی نیازی نیست که تلاشتان را زودتر از دیگران شروع کرده باشید. سفر موفقیت روی منحنی برتری خفیف در دسترس همه کسانی است که بخواهند در مسیر پیشرفت حرکت کنند و در آن باقی بمانند. اما فقط با ور شدن در فرایند پیشرفت هر روزه است که مسیر موفقیت را از بر میشوید. فقط اینگونه است که مهارت و اطلاعاتی را به دست میآورید که برای مهارت یافتن و استاد شدن در برتری خفیف و از این رو موفقیت در زندگیتان به آنها نیاز دارید. همه آنچه به آن نیاز دارید برداشتن اولین گام است. فقط باید اولین گام را بردارید. همه افرادی که در اطرافتان به این سو و آن سو می روند، قدم به قدم پیش می روند. شما گام برداشتن آنها را می بینید. پای راست، پای چپ، پای راست، پای چپ. بنابراین شما نیز امتحان می کنید. شما آن گام اول مقدماتی و هماس ساز را بر می دارید و آماده برداشتن گام بعدی می شوید و سپس سقوط می کنید. دوباره سعی می کنید و باز هم تلاش می کنید. پس از روزها راه رفتن با دست گرفتن به میز و صندلی یا گرفتن انگشتان والدین سرانجام اولین دو گام متوالیتان را بر دارید. سپس سه گام، چهار گام و پس از مدتی کاملا به تنهایی و با گام های خانوادهتان آن گامهای کودکانه مطمئن و بدون لرزش را بر دارید و سرانجام راه می روید. در فرایند یادگیری راه رفتن بیشتر وقت شما صرف زمین خوردن شد یا راه رفتن. مسلمان به مراتب بیشتر از اینکه موفق شده باشید شکست خورده اید. و این موضوع اصلا مهم نبود زیرا شما در مسیر مهارت یافتن و استادی بودید. آیا اصلا به فکر تسلیم شدن افتادید؟ آیا اصلا به خودتان گفتید میدانی به نظرم میرسد که من به درد راه رفتن نمیخورم. خب به نظرم باید بقیه عمرم را سینه خیز آن هم بد نیست. اگر لحظه ای مکس کنی و به آن فکر کنی، آن هم سخت نیست که به خیز رفتن عادت کنی. البته که چنین چیزی را به خودتان نگفتید. شما در مسیر مهارت یافتن و استادی بودید. شما تقریبا استاد شده بودید. حالا موضوع فقط این بود که مهارت‌های راه رفتنتان بهتر شوند. دائما افتادن و زمین خوردن واقعاً دردناک است و در آن لحظه در وضعیت بامزه ای مانند لاک پشتی که به پشت افتاده است به نظر می رسیدید اما شما در هر صورت این کار را ادامه دادید چرا چون افراد موفق کارهایی را انجام می دهند که افراد ناموفق تمایلی به انجام دادنشان ندارند و قسمت جالب ماجرا این است که همه کودکان موفق می شوند در کودکی همه ما در هر کاری استادیم. آفرینش ما به همین صورت است. همه نوزادان به طور غریزی برتری خفیف را درک می‌کنند. فقط به دلیل آن چهل هزار باری که کلمه نه را می شنویم، کشش طبیعی ما به سوی موفقیت، مهارت یافتن و استادی از بین میرود. آیا در زندگیتان موقعیتی وجود دارد که برای رسیدن به آن تسلیم شده باشید و تصمیم گرفته باشید که برای باقی زندگیتان به جای رفتن به دنبال آنچه واقعا میخواهید و سزاوارش هستید سینه خیز بروید. آیا تا به حال توانایی و ظرفیت انتخاب یک هدف رفتن به دنبال آن و به دست آوردن آن را رها کرده اید؟ اگر چنین است؟ باید از خودتان بپرسید چرا انجام دادن کاری که اگر سنتان کمتر از یک سال بود بدون ناامیدی و تسلیم شدن آن را انجام میدادید امروز اینقدر برایتان سخت و غیرممکن شده است جواب این سؤال خیلی ساده و به همان اندازه نیز ناراحت کننده است شما جایی در طول این مسیر ایمانتان را از دست داده اید شما برای برداشتن گام های کوچک و کودکانه بسیار بزرگ شده اید و به قدری مطمئن هستید هرگز موفق نمیشوید که به خودتان اجازه نمی دهید چند بار اول را شکست بخورید. شما این حقیقت را فراموش کرده اید که اقدامات منظم ساده و کوچکی که در طول زمان بارها و بارها تکرار می شوند بزرگترین کوه را به حرکت در میآورند شما آن را درباره برتری خفیف می فراموش و رها کرده ایید شما از مسیر مهارت یافتن و استادی خارج شده اید. رها کردن آن تمایل کودکانه ی تلاش مجدد و چندباره و همچنین باور و قبول این ایده که این روش هرگز برای من کارساز نیست بسیار خطرناک است. زیرا به چیزی کمتر قانع شدن، دست کشیدن از قدرت گامهای کودکانه و پذیرش شکست خیلی زود به عادت تبدیل می شود، اولین باری که دست از کاری میکشید و تسلیم میشوید دردناک است بار دوم هنوز هم دردناک است اما حالا حس آشنایی به آن دارید و در آن آشنایی کمی راحتی و آسودگی نهفته است این آرامش شبیه مرگ خاموش با مونوکسید کربن است هرچه در آن فرو روید پذیرش آن نیز راحتتر تر می شود و هوشیاری لازم را برای کسب دستاوردهای حقیقی بیشتر از دست میدهید و موفقیت از شما دورتر می شود. می توانید بزنید چرا؟ درست است. این همان برتری خفیف است که علیه شما عمل می کند. قبل از اینکه متوجه شوید، زندگی سخت و دشوار می شود. به جمع 95 درصد خوش آمدید. همانند همیشه، همه آنچه لازم است انجام دهید، دیدن روی دیگر سکه برای پیدا کردن خبرهای خوب است. بازگشتن به عادت موفقیت به همان آسانی لغزیدن به عادت شکست خوردن است. هرچه بیشتر به این روش زندگی کنید، این کار راحتتر و آسانتر می شود. منظورم این است که هرگاه که بخواهید می توانید به مسیر مهارت یافتن و استادی برگردید. خاص ناپل اونهیل در کتاب جاودانش به نام بیاندیشید و ثروتمند شوید مینویسد هر کسی برای پیروز شدن باید واجد یک خصوصیت باشد و آن خصوصیت قطعیت هدف و مشخص بودن آن است یعنی آگاهی از آنچه میخواهد و اشتیاقی سوزان برای دستیابی به آن آگاهی از آنچه شخص میخواهد موضوعی بسیار مهم است همه ما در تصوراتمان دوست داریم که اوضاع به گونه‌ای خاص باشد و آن تصور با وضعیت امروزش کاملا متفاوت است. این موضوع می‌تواند به سادگی آرزوی کم کردن 5 کیلوگرم از وزنمان باشد یا چیزی بسیار دور از دسترس مانند آرزوی غذا دادن به میلیونها کودکی که در سراسر جهان هر شب با شکم گرسنه سر روی بالش می‌گذارند. آیا تاکنون چیزی را آنقدر مشتاقانه خواسته اید که باعث ناراحتی و آسیب تان شود؟ البته که خواسته اید، همه ما خواسته ایم. گاهی اوقات یک درد شیرین و لذت بخش است و گاهی اوقات چندان شیرین نیست، اما در هر حال یک نیروی قدرتمند است. من به آن درد خواستن میگویم. داشتن رؤیا، هدف یا آرمان همیشه موضوعی شیرین و مطلوب نیست. جاه تلبی ها، آرمان ها و خواسته ها میتوانند ناراحت کننده یا حتی دردناک باشند. کلمه خواستن به دو معناست. میتواند به این معنا باشد که شما آرزوی چیزی را دارید یا به این معنا که شما نیازمند و فاقد چیزی هستید. معنای دوم تعریف اصلی و بسیار قدیمی تر است. اما به تعبیری آنها دو معنای متفاوت نیستند بلکه دو جنبه متفاوت یک معنای یکسان هستند. ما تمایل داریم تا آرزومند چیزی باشیم که به آن نیاز داریم و نیازمند چیزی باشیم که آرزومندش هستیم به همین دلیل است که رؤیاها می توانند دردناک باشند فکر کنید چه چیزی است که آرزویش را دارید اما در حال حاضر به همان اندازه آرزومندیش به آن نیاز ندارید منظورم این است که درباره چیزهایی که ندارید کاملا آگاهی پیدا کنید، با چشم‌های باز و واقعبین به واقعیت فعلیتان خیره شوید و از فری به خودتان امتناع کنید. توجه داشته باشید اینکه شما در جایی نیستید که میخواهید باشید، می‌تواند ناراحت کنند و ناخوشایند باشد. وقتی که اونهیل می‌گوید، اشتیاقی سوزان برای دستیابی به آن شوخی نمی‌کند و سوزان بودن یک چیز مطلوب و خوشایند نیست. خواستن دردناک است در اینجا نکته جالب و زریفی وجود دارد اگر برای شما کمی ناخوشایند و ناراحت کننده است که مشتاقانه ترین رؤیاهایتان را با صدای بلند بیان کنید بدانید که این کار می تواند افراد پیرامونتان را نیز ناراحت کند بزرگترین آرزویتان را به پنج نفر از صمیمیترین و نزدیکترین دوستانتان بگویید و ببینید که چند نفر از آنها ناراحت می شوند. چرا؟ زیرا وقتی که به آنها میگویید چه میخواهید، یعنی آرزومندی آنها را نیز کاملا از خواسته هایشان یعنی نیاز آگاه می کنید. به همین دلیل است که وقتی اهدافتان را برنامه ریزی می کنید و چشمندازی را برای آیندهتان مشخص می کنید، باید مواظب باشید که آنها را با چه کسانی در میان میگذارید؟ البته کاملا طبیعی است که شور و اشتیاقتان را با اطرافیانتان و به خصوص کسانی که با آنها نزدیک و سمیمی هستید در میان بگذارید. اما یادآوری این نکته مفید و ضروری است که مردم اغلب تمایل دارند تا شما را از برنامه هایتان دل سرد کنند. آنها این کار را از روی بدخواهی و کین توزی یا با خاست آگاهانه برای از بین بردن هیجان شما انجام نمیدهند. در بیشتر مواقع این کار فقط شکلی از دفاع شخصی است. آنها ترجیح می دهند درباره شما چیزی نشنوند زیرا آنها را به یاد چشماندازی می اندازد که از دست داده اند.